سلام عرض بکنم خدمت شنوندگاه نزیز. من شریفی هستم. به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید. در این قسمت در مورد تعداد وکیل در دعوای حقوقی صحبت بکنیم. سوال می شود که ما اگر قصد ترهایی دعوای حقوقی داشته باشیم، چه تعداد وکیل می توانیم انتخاب بکنیم؟ در حال لازه بر طبق حانون، شما می توانید دو وکیل رو انتخاب بکنید. یعنی بیشتر از دو وکیل رو نمیتوانید انتخاب بکنیم سوال ما قبلا تحتح دعوا کرده ایم یک وکیل انتخاب کرده ایم آیا می توانیم یک وکیل دیگر هم انتخاب بکنیم؟ بله هیچ اشکالی ندارد یعنی این گروه نیست که تصور بشود وقتی می می توانید دو وکیل انتخاب بکنید یعنی الزامن باید در زمان طرح دوا یا یک وکیل انتخاب بکنید یا دو وکیل انتخاب بکنید خیر شما می توانید از یک وکیل انتخاب کنید و بعدا یک وکیل دیگر را هم اضافه کنید سوال ما خودمان اقامه دعوا کرده ایم آیا بعد از اینکه اقامه دعوا کرده ایم و دعوای ما در جریان است می توانیم وکیل انتخاب بکنیم بله می توانیم وکیل انتخاب بکنیم سوال ما خودمان اقامه دعوا کردیم بعد از یک مدتی یک وکیل انتخاب کرده ایم آیا می توانیم یک وکیل دیگر هم انتخاب بکنیم بله شما می توانید یک وکیل دیگر هم انتخاب بکنید پس بنابر به این اشکاله مختلفی که بیان شد شما میتونید از خدمات و کلای دادگستری استفاده بکنید.